بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق نجم ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فَلْيَنْظُرِ الإنسان مما خُلِقَ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد على محمد على اللهم بارك در سوره گذشته که سوره بروج بود شواهدی بر ثبوت قیامت خاندیم و الموعود و شاهد و مشهود همچنین اونجا تخویف و بشارت بود دنیاوی و اخروی حال در سوره طارق الله تعالی می فرماید فمهل الکافرین امهلهم رویدا یعنی وقتی که باوجود این همه شواهد انکار می کنند و قبول ندارند مقداری و مدتی اونها را مهلت بده بعد از مهلت وقتی که عذاب و گرفتاری مقدرشون باشد گرفتاری خدا به سراغشون می آید پس در این سوره هم بعد از دلائل هم تخویف اخروی هست خدای تعالی از عذاب آخرت و امون موضوع قیامت که ارز کردم تا سوره طارق بحث بحث قیامت هست تا اینجا بحث بحث قیامت بود الله تعالی سوگند یاد میکند و شاهد میگیرد آسمان را و طارق تاریق میگویند ستاره را که در شب تلو می میکند اصل تاریق به معنای در زدن هست کسی که شب میآید در میزند ترو قلباب فی اللیل کسی که شب در میزند این ستاره را تاریق میگویند به خاطر اینکه روزها اثری ازش نیست شب ظاهر میشه شب روی آسمان دیده میشه. الله تعالی طارق را که ذکر کردند به صورت استفهام و سوال میپرسند وما ما ادراک مت تاریق خبر داری که تاریق چی هست؟ النجم و ثاقب اون ستاره روشن هست. حال بعضی میگن که یک ستاره خاصی هست. بعضی ستاره خاصی را ذکر کردن. بعضی سریا گفتم مراز سریا هست، بعضی گفتم مراز زحل هست. هر یکی یک ستاره گفته چون هر یکی از این ستاره ها است. اما حقیقتش اینه که قرآن مشخص نفرموده، مطلق فرموده ان الثاقب. و که در سیاهی شب می درخشد، یعنی همه این ستاره ها شاهدند، همه این ستاره ها گواه هستند. ان كل نفس لما عليها حافظ هیچ نفسی نیست مگر بر او محافظی هست. یعنی هر نفس انسان حافظی دارد. انسان فکر می کند که هر چی دلش بخواهد انجام بده و فکر می کند کسی از او سوال نمی کند. اما انسان کور خانده کسی که اینطور فکر می کند. برای هر نفسی نگهبان تعیین شده. برای هر نفسی محافظ تعیین شده هر کاری که میکند ثبت میشه هر کاری که انسان انجام میده ضبط میشه هر کاری که انسان انجام میدهد در پروندهاش نوشته میشه بعد از این چون که انسان منکر قیامت هست و قبول ندارد که همه چیز نوشته بشه انسان کافر مراد است و روز قیامت از او خاص بشه خداوند تعالی برای اثبات قیامت از وجود خود انسان دلیل میاله فلینظر الانسان و من خلق انسان ببیند از چه چیزی آفریده شده خلق انسان و پیدایش انسان از چیه اگر بخواهیم با معیار عقل بسنجیم اگر بخواهیم با ترازوی عقل ترازو بکنیم خب عقل این هم قبول نداره که از یک قطره انسان درست بشه ولی وقتی که قدرت خدا را نگاه میکنیم میبینیم همه با چشمان سر میبینیم که انسان درست میشه از این قطره فلینظور الانسان من خلق انسان نگاه کنه از سیاه آفریده شده خلق من مائن دافقین یا خرج من بین صلب و ترائب انسان آفریده شده از آبی جهنده آبی که در حالت جهش از بدن انسان خارج میشه در حالت تحریک خارج میشه و این آب خارج میشه یخرج من بین صلب و ترائب از میان کمر و از میان سینه از میان کمر و از میان سینه یعنی چه بیشتر مفسرین که به صورت عمومی تفسیر میکنند میگویند که سولب مربوط به مرد هست، ترائب مربوط به زن هست. یعنی این ای که خارج میشه از کمر مرد خارج میشه و از مال زن محلش سینه هست، پشت سینه هست. ولی حضرت حسن بصری رحمه الله میفرماید که این صلب و ترائب مال هر دو هست مال مرد و زن محلش یکی هست همونطور که محل قلب یکی هست و محل کلیه یکی هست مال مرد و زن تمام اعضا یکی هستند این محل هم یک محل است. در واقع مال مرد هم بین کمر و بین سینه در وسط جایی هست اونجا مرکز منی هست ماده منویه از اون جب درست میشه و خارج میشه و مالم زن هم بین کمر و بین سینه محلی هست محلش یکی هست هیچ فرقی نمی کند و اون چیزی که حسن بصری رحمه الله میفرماید با اون چیزی که دانش امروز میگه بیشتر مطابقت داره چون دانش امروز و علم پزشکی معتقد هست که همونطور که بقیه چیزهایی که از بدن انسان تشکیل میشه از سه عضو اصلی یعنی مغز و قلب به اصطلاح دل میگن قلب و جگر همچنین ماده منویه از همین سه چیز درست میشه از جگر و قلب انسان یه چیزی میاد خارج میشه در اون مخزنی که وجود داره در اون مخزن قرار میگیره و بعد یک ترشوه سفید رنگی مثل قطره آبی از مغز میاد از وسط ستون فقرات میاد در کمر قرار میگیره و اون دوتا ماده دیگر همراه میشه اینها از ترکیب این سه هر تا منی میشه که بعدا با تحریک و با جهشی از همون راه کمر از بدن انسان خارج میشه لذا فرقی بین مرد و زن نیست بنابراین اون چیزی که علم جدید میگه حسن بسری رحمه الله همین را گفته و قرآن هم همین را تایید میکنه گویا علم جدید امروز به همون نکتهی رسیده به همون مطلبی رسیده که الله عزوجل در زمان نزول قرآن مجید اون را بیان فرموده که این ماده منویه مال مرد و مال زن مال هر دو بین سلب و ترائب هست بین کمر و سینه تقریبا محل جگر انسان و قلب انسان هم همین دو جا هست بین همین کمر و سینه هست الله می فرماید که این انسان را ما از اون ماده و از اون نطفه که بین سلب و ترائب هست آفریدیم وقتی که از اون قطریه بی ارزش بظاهر آفریدیم خب اون خدا دوباره بر بازگشت اون بر دوباره بر زنده کردن مجدد او هم قادر هست انه على رجعی لقادر اما انا آن ذات بر بازگشت و برگرداندن این انسان قادر هست و توانا هست یوم تبل لسرائر اما وقت بازگشت که هست وقت دوباره زنده شدن کی هست الله می فرماید یوم تطبل السرائر روزی که رازها فاش می شه رازها فاش میشه شه به چه معنا یک معناش اینه که عقاید فاسده و نیات باطله هر انسانی که در درونش هست در دنیا به اصطلاح خودش را نشون میداده که من چیزی دیگه فکر میکنم، من چیزی دیگه در درونم هست ما در حق چیزی دیگه بود در اون روز ظاهر و آشکار میشه و بعضی میگویند در اون روز تمام رازها فاش میشه هر دو درست است هر چی که در عقیده انسان هست در نیت انسان هست در فکر انسان فاسد غیر فاسد اون افشام میشه و همچنین بسیاری چیزهایی که در دنیا اتفاقاتی که افتاده رازهایی که در دنیا مخفی مانده در اون روز فاش میشه در اون روز مشخص میشه که بسیاری از جنایتهایی که هنوز معلوم نیست کی مرتکب شد بسیاری از تصمیماتی که پشت درهای بسته گرفته شد بر علیه انسانهای پاک و خون انسانهای پاک ریختی شد اینها را چه کسانی انجام داده معلوم نیست یوم تبل السرائر در اون روز این رازها فاش میشه، در اون روز همه این حقائق مشخص میشه، فماله من قوة ولا ناصر، نیست برای این انسان هیچ قدرتی و هیچ ناصری نفی شفاعت هست، هیچ کسی که او را یاری کند، او را کمک بکند، وجود ندارد، و السماع ذات الرئی، این یک دلیل بود برای اثبات قیامت، حاصل این دلیل این بود همون طور که، از نطفه نطفه جان، انسان جاندار و انسان فهیم و انسان عاقل پیدا میشه همچنین از این انسان مرده و خاکش و خاکسترش و استخانش دوباره همین انسان خالق میشه دوباره پیدا میشه یک دلیل دیگر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع قسم به آسمان اون آسمانی که ذات رجع هست یعنی هر چیز را بر میگرداند معلوم میشه که باران باران را آسمان باز میشه و بر می بعضی نظراتی که امروز میگند یک سری ارز کنم خدمت شما بخاراتی هست و یک سری کنم که چیزهایی که از زمین به آسمان میره شبنم یا بخار یا گاز یا هر تعبیری که اینها از زمین میره و اونجا تبدیل به ابر میشه و دوباره بر میگرده و سماع ذات الرجع این را هم میتونیم که از این اثبات کنیم آسمانی که بر میگرداند آب را و ذات صدع و زمینی که دارای شکاف است یعنی وقتی که این آب میریزد روی زمین و ته زمین میره زمین شکافته میشه و از دل زمین جوانه سبزی نباتات همه میرویند این زمین مرده را میبینی چطور زنده میشه لذا خدایی که این زمین مرده را زنده میکند اون خدا انسان مرده را هم زنده میکند بعد از اینکه این دو دلیل را الله بیان میفرماید میفرماید همانا این سخن سخن فصلی هست یعنی اینکه انسان روز قیامت زنده میشه این فیصله شده این قطعیه این چیزی هست که شکی توش نیست و ما با هو بالحاضل این شوخی نیست این حرف شوخی نیست حرف مسخره نیست این یک واقعیتی انسان بفهم که بعد از اینکه مردی دوباره زنده میشی و درباره اون که در زندگیت انجام دادی باید حساب پس بدی اما در پایان الله عزوجل میفرماید باوجود این همه دلائل دشمنان ما دشمنان ایمان دشمنان قرآن دشمنان اسلام همواره به فکر قید و مکر و هستند. هستند سای می که نسبت به ایمان نسبت به عقیده عقیده شما سست کنن ضعیف کنن با شبهات و شکوک خودشان الله می فرماید انهم یکیدون همانا ان کافران ان دشمنان یکیدون كَيْدًا تدبیر میکنن توطئه میکنن بر علیه دین کیدان توطئه کردنی و اکید و کیدا من الله هم تدبیر میکنم تدبیر کردنی اونها هم تدبیر میکنن ما هم تدبیر میکنیم فمهل للكافرین امهلهم رویدا پس مقدار کمی به کافران مهلت بده فمهل للكافرین مهلت بده به کافران برای اینکه عذاب مهلتشون بده چقدر مهلت بدیم چقدر منتظر باشیم بر الها امهلهم رویدا مهلت بده کمی مهلت بده کمی مهلت بده تا اینکه اون موعدی که پروردگار تعیین کرده اون موعد فرا برسد